داستان ثوم گلابتون سه ساعت دیرتر رسیدم سر کار مدیرم اخماش تو همه انوز از دماغم خون میاد دستمال گرفتم روش چپ چپ نگام میکنه تورا با یه عوضی دوام شد نمیدونم سر چی ولی هم زدم هم خوردم نعره کشیده بودم داد زده بودم فوش داده بودم حالا بهتر شده بود مدیر میگه علیک که سلام آقای سعید آقا میگم سلام آقای سکتی این چه سر و شکلیه حسابی ترکوندی امروز ای بابا نه آقا آخه یه دیر اومدی اینم سرو وز لباست چه خبر آقا سعید بگو ما بدونیم هیچی به خدا آخه داشتم چند وقت دل به کار نمیدی دواد شده امروز با کسی؟ چند وقت دل به کار نمیدی ببین تو رو خدا خیلی باحاله. عجب آدم جالبیه این آقای ساکتی خیلی بانمکه صاحب به فروشگاهه همین امروز رو دیر اومدم فقط یه امروز حالا حوصله ندارم اون وقت میگه چند وقته چرا مردم این آخه میگم؟ ببخشید به خدا گرفته شدم چشم تکرار نمیشه چپ چپ تر نگاه میکنه میگه بله معلومه ای خدا چی بگم آخه به این مردک میرم پشت یکی از ویترینها. ها به هیچ کس نیست دارم بیرون رو نگاه میکنم گلوم درد میکنه انگار یه حولو کرده تو گلوم امیر همکارم میزنه پاشتم برمیگردم سلام میکنم دیشباش تلفنی حرف زده بودم قضیه رو فقط اون میدونه باید به یکی میگفتم قبلی زنگ زده بودم تبریز خونه مادر خانمم مثلا غیر مستقیم ازش پرسیده بودم و فهمیدم که گلی نرفته اونجا قرار هم نبوده بره نمیدونم چرا هر وقت میخوام چیزی رو غیر مستقیم از کسی بپرسم گندشو درمیارم. در میارم مادر زنم داشت از تعجب شاخ در میارد. خیلی نگران شده بود گفته بود یعنی اگه قرار بود بیا تبریز به تو نمیگفت که تو الان زنگ زدی اینجا سوراخ زن تو از من میگیری راست میگفتی که فکر کرده بود شده اونم گذشته رفته یه جوری جمع جورش کرده بودم و مثلا خیالش رو راحت کرده بودم. امیر دیشب گفته بود به هیچ کدوم از فامیلامون زنگ نزنم فعلا. گفته بود کلانتری هم نرم. ولی مگه میشد آخه؟ طاقت نمی به هر شماره که تو گوشی گلی بود زنگ زدم. آخه گوشیش تو خونه مونده بود. بعضیاشون گفته بودن اشتباه گرفتید. شماره‌ها واگذار شده بود. بقیه هم تعجب کرده بودن و گفته بودن خیلی وقت ازش خبر ندارن. فامیل راشنه های دیگه هم ازش خبر نداشتم کلن زیاد دوست و فامیل نداریم همه یه رو خبر کردم همه تماس ها و پیام های تو گوشیش رو چک کردم به شرافت هم قسم اولین بارم بود خب مجبور بودم ولی هیچی هیچی دستگیرم نشد امروز اول صبحم که رفتم کلانتری دیشب ساعت یازده رسیدم خونه دیدم گلی زنم نیست عجب هستیه. فکر کنم دارم گریه میکنم. نمیتونم درست فکر کنم. به سوالای مامور کلانتری هم نتونستم درست جواب بدم. همون که داشت گزارش گم شدن زنوم می نوشت. یه چند تا سوال کرده بود با بی‌حوصلگی. از همین سوالا که میپرسن دیگه. انگار که داره گزارش گم شدن یه ماشینو مینویسه. مامور کلانتری میگه اسم فامیل خانمت چیه؟ میگم گلی خجسته. یعنی ببخشید گلابتونه خوجسته چه لباسی تنشه؟ من که نمیدونم جناب سروان ندیدم که حتما من شلوار دیگه اینو میدونم چه رنگی؟ خوب گفتم من ندیدم شو بعد هم یه سالهایی میکنن انگار زن من یه بچه یا یه پیرزن زن سال ساله است که بام شده میگم مشکی، سورمهی، شایدم قهوهی قد و وزنش شنده یک و شست و پنج یا شست و سه قدشه وزنشم نمیدونم به خدا یکو شست و یا شست و دو سه آخ دو سانتیمتر اینور و اونور خیلی مهمه واسه اینکه معلوم بشه چی سر زنم اومده بابا حسابی هول شده بودم وقتی هول میشم احمقم میشم میگه چی میدونی از خانومت پس واقعا زنته آدم نفهم خیلی راحت آدمو ضایع میکنن داشتم پوسته سندلی که روش نشسته بودم میکندم بر روبر یارو نگاه واقعا فاغن ته عین چی عصبیش شده بودم هی پاموتکم می‌دادم اونایی هم که تو اتاق بودن زور زده بودن به من کلا مردم خوره اینجور اتفاقاتن میخوان هر طور شده تا توی رو در بیارم بعد برن واسه همه تعریف کنن که آره امروز یه یارو با یه سر و وضعی اومده بود کلانتری می گفت میگفت زنمو دزدیدن حالا معلوم نبود زنش بود یا نه اصلا معلوم نبود چیکار کنه که زنش رفته معلوم نیست شادن با کسی رفته از این حرفا دیگه مردم خوره اینجور چیزان دیگه از خداشونه مثلا آبروی کسی ریخته بشه واسه سرگرمی اینا بعد برن با آب و تاب واسه بقیه تعریف کنن و زندگیشون از یک نباختی در بیاد. دلم میخواست اون مأمور رو بگیرم تا میخورد بزنم نه خاطر حرفی که زد كلا از کلانتری و آدمهای توش دل خوشی ندارم عین یابو با آدم رفتار میکنن پاتو بذاری اینجا اسمت میشه مجرم و هر جور دلشون بخواد با آدم رفتار میکنن. گفتم یعنی که چی واقعا زنته این چه حرفیه میزنی آقا دروغم چیه؟ بفرمایید این عکسش اینم شناسنامش اینم کارت ملی من میگه بشین آقا بفرما بشین گفتم داد و بیداد و بی هم راه ننداز اینجا نگار اولین بارمونه بده کار هم شدم خاک بر سر من که پا شدم رفتم کلانتری. اینجا آدم ای رو بیابرون میکنن. کنن گفت این صبح آخرین باری که دیدیش گفتی صبح بود دیگه بله صبح بود سر کار میرفتم. خب همون. دعوایی کتکكاری بگو مگویی نشد بینتون دعوا نه آقا ما با هم مشکلی نداشتیم چرا میگی نداشتیم هاه مثل این پلیس تو سریالای تلویزیون حرف میزد میگم ای بابا منظورم اینه که نداریم جناب سروا اصلا حالم خوب نیست دارم دیوونه میشم زنا منو دزدیدن وگرنه آدمی نبود که همینطوری بیخبر بذاره بره بیرون و شبهم خونه یاد. از کجا مطمئنی دزدیدنش تماس تهدیدآمیز داشتی؟ نامه نامه‌ای یا چیزی که بفهمی کسی به زور وارد خونت شده؟ از کجا مطمئنی که نذاشته بره؟ نه. ولی شاید رفته خرید کنه، سوار ماشین کردن و بردنش یا چه میدونم؟ فرضی بافی رو بذار به عهده ما. با همه دوستا و فامیلاتون تماس گرفتی؟ بله، همون دیشب هم تماس گرفتم. به چند تا از بیمارستان هم سر زدم. دیگه داشا سرمو سر می‌بورد. چند بیست و سه. بالنداش به من میخورد هوای هم مثل هوای بیمارستان حال آدم و خراب میکنه پشیمونم که رفتم یارو بهم گفته بود از من میشنوی پیشو نگیر به نفع خودته ما از این مورد ها زیاد میبینیم پیشو نگیر خودت ازیاد میشی آخرش معلوم میشه خوش خورم رفته دنبال عشقش دنبالش نگرد رفته که رفته دارم دیوونه میشم رفته که رفته باید هم اینو بگه زن اون كه زن منه میخوام بدونم اون کر خر اگه زن خودش هم اینجوری گم و گور میشد همینو به خودش میگفت شادم میگفت سر و صورت هم میشورم میام وامیستم سر کارم یکی از ویترین ها رو خالی میکنم همه ای پیرهن ها رو درمیارم میذارم رو شیشه ویترین امیر میاد وامیسته بالا سرم دستشو گذاشته رو شیشه خودشو انداخته رو ویترین میگه کچه بودی از صبح به ساکتی گفتم خانم حالا اینجوری بهش گفته با این حال مدیرم شاکیه میگه خب کجا بودی اومد خونه چی شد میگم نه نه نیومده رفته بودم کنار ای بابا واسه چی رفتی مگه نگفتم بهت نرو دیوانه ای میخواد تو بوخ کنی که زنت معلوم نیست کجا رفته ببینم این خفش زنم نرفته اگه رفته باشه هم دلیل موجه داره من علاقم بگو که به تو گفتم سعید جان من غلط کردم خفه حلش میدم اونور آقای ساکتی مثل چی گوشش رو تیز کرده خیاتمونم همینطور داخل ویترین و دستمال میکشم میدونید آدم آرومیه زن و میگم وقت سرم قور نمیزد منظورم ینه که نمیزنه همیشه راضی به نظر میاد زیادم اهل قروفر نیست خیلی وقتا سر خیلی چیزا کوتاه میاد کنار میاد امیر دیروز پارسیده بود چقدر میشناسیش چه جور آدمیه زنا میگفت خب من کاملا میشناسمش یعنی میشناسمش دیگه زنم خوب زیاد اهل گشتن و اینور اونور نبود تو اونجایی هم که میدونم دوست آشنای نداره که باش رابطه داشته باشه یا خونهشون بره اونا بیان نه اینطوری نبود شاید من نمیدونم آخه هر وقت زنگ میزدم بهش خونه بود هر وقت میرفتم میومدم خونه بود جایی نمی رفت. تنها سرگرمیشم ساختن آدمک با خمیر بود هر جور خمیری مثلا روزنماهای باطله رو نمیدونم چیکارشون چی کارش میکرد با چی قاطی میکرد می شد می مثل خمیر بعد باش آدمک های با مزهی درست میکرد من می میرم واسه شون امیر میگه بست شیشه شکست چقدر دستمان میکشی بیا وقیشو خودت تموم کن دستمانو میندازم تو بقل امیر مخمداره فروشگاه. به خونه زنگ میزنم کسی گوشی رو بر نمیداره موبایل گلی رو میگیرم، میدونم تو خونه رو میز مونده. اونم کسی جواب نمیده. یعنی هنوز نیمده انگار یه حلو گیر کرده تو کلوم. موبایلشو جا گذاشته یا عمدن نبرده. به زور از خونه بردنش بیرون یا وقتی بیرون بوده به زور سوار ماشین کردنش. شاید هم خودش رفته بیرون دیگه نخواسته برگرده. دیگه نخواسته برگرده؟ چرا مثلا؟ خب کجا رفته؟ کی خونه کی رفته؟ طلاق میخواد یعنی؟ خب چجوری یه بارم هم نگفت؟ اصلا کی حرف طلاقا زد؟ شناسنامش که خونه بود شاید در گرفته خب گرفته که باش چیکار کنه؟ اصلا کی دردشو به من گفت که الان بخواد بگه؟ چرا من یه چی؟ آی دانشور مشتری دارید؟ صدای خیاتمون بود امیر کدوم گوری رفته میرم تو فروشگاه امروز مغازه خیلی خلوته. یقه مردم میگیریم به زور میاریم تو فرار میکنن انگار میخوایم آتیششون بزنیم. امروز یه گل هم نزدیم میدونید این یه اصطلاحه. وقتی که یه دست کتا شلوار بفروشیم هم میگیم گل زدیم. یا اگه مثلا من یه مشتری رو بیارم تو بسپارم به همکارم و همکارم گل بزنه، اون وقت من پاس گل دادم. یکی از مشتری ها رو به زور میکنم تو اتاق پروف. دو ساعت بعد میاد بیرون. پتو شرواری که بههش دادم تو تنش زار میزنه بهش میگم به به فیت تنتونه آقا انگار تو تنتون دوختنش استیلتونم خیلی خوبه خیلی خوب بهتون میاد یک کراوات که بهش بخورم الان براتون میارم امیر حرفامو تایید میکنه خیلی شیک شدین چند سالتونه جسارتن شروع میکنه موخه طرفو بزنه مثلا میخواد امروز هوای منو داشته باشه همیشه با مشتری خودش هم همین کارو میکنه انقدر باهاشون حرف میزنه و تعریف خاری میکنه که طرف دیگه روش نمیشه دست خالی از مغازه بره بیرون طرفی خودشو تو آینه قدی نگاه میکنه میگه خب این خوبه ولی یه رنگ روشنتر میخوام مثلا نقره ای براقشو ندارین میگم چرا هست بیارم خدمتتون تم بزنید ولی اگه نظر منو بخواین چون رنگ پوستتون روشنه کت تیره خیلی بهتر بهتون میاد اصلا چهرتون کلی عوض شده این تضادی که رنگتون با لباستون ایجاد کرده خیلی به سردار خنده میگیره. امیر دنبال حرفامو میگیره. خدایش اینو دیگه راست گفتم. خب رنگ پوستش روشنه. ولی شما بعد اینجا بودید و ریخت ای رو که براش به هم زده بودین میدیدید، تو از نزدیک با عمق فاجعه روبرو میشدید امیر میاد از کنارم رد میشه. آروم میگه چنیم شد قاتون ویا کن. یعنی راضی شد، اوکی شد، پایین بگو. منظورش اینه که قیمت رو پایین بگم. میگم حالا نقرهشو بیارم پروف کنید؟ رفته تو فکر نه فکر کنم همین بهتره یه پاسکاری خوب و گل نقرهشو اصلا نداریم گلی همیشه میگه مردم ها دست ننداز دروغ نگو بهشون به زور بهشون جنس نفروش همیشه هم حرس میخور از چیزهی که براش تعریف میکنم ولی خندهش هم میگیره به زور جلو خندهشو میگیره بعد یهو ها پقی میزنه زیر خنده من واسه این کارش ولی بعدش هم کلی نصیحت هم میکنه و میگه از جنساتون علکی تعریف نکن وقتی هم نمیخرن پشت سرشون بدو بیرا بارشون نکن خب اینا همش یعنی که گلی آدم خوبیه دیگه یعنی مهربونه یعنی زن خوبیه پس منو ول نمیکنه بره همینطوری نمیذاره بره که حالا من حالم این باشه که دخ کنم که از فکر و خیال مخم فجر بشه هی hey. که قلبم هی hey, هری بریزه پایین که نتونم از کسی بپرسم شما میدونید زن من کجا گذاشته رفته اما فعلا که رفته نهربونم که باشه فعلا رفته آدم خوبی هم که باشه فعلا که منو گذاشته رفته ساعت ده و نیمه شبه دارین فروشگاه تعطیل میکنیم مردم تازه یادشون افتاده بیان خرید کنن چیزی هم نمیخرن که الکی نگاه میکنم فقط شست و شیش بار دیگهم زنگ زدم خونه زنگ زدم به موبایلش موبایلش خونه مونده میدونم شست و شیش بار رفتم مغازه که کسی دید نداره شست و شیش بار سرما کوبیدم به دیوار انباری شست و شیش جور فکر مختلف کردم این خودش رفته ترکم کرده میخواد ازم جدا بشه لاباد خب اینجور وقتا یا قبلش یه جوری به آدم میگن یا یه نوشته یه چیزی شایدم دوستیدنش دوستیدن که پول بخان عمرن مگه فیلمه دوستیدنش که بهش وای ای وای ساعت یک روبه یاسته من و امیر از فروشگاه میآین بیرون. آقای ساکتی داره حساب کتابش رو بررسی میکنه با حساب حسابدارش. از قبل به امیر هشدار دادم که تو راه زر زیادی نزنه، پیشنهادای مزخرف نده. اونم گوش کرده. هیچ حرفی نمیزنیم تو تاکسی نشستم دارم میرم خونه. امیر جلوت پیاده شده. هی چرت میزنم تو ماشین. راننده هی میزنه رو ترمز، هی سکتم میده. باور کنید الکی میزنه رو ترمز. همینجوری واسه تفریح رو صندلی عقب نشستم. میزنم روشونش میگم بابا خیلی باحالی. خیلی حال کردم باهات. یه پسر جوونه، حدودا 19-20 ساله با موهای دو یه طرف موهاشو قرمز کرده، یه طرفش هم بنفش. یه زنجیر کلفتم انداخته گردنش. زبط ماشینش هم یکی از آهنگای متالیکا رو پخش میکنه. از تو آینه نگاه میکنه. خیلی بیمانی. فکر کنم با ریتم موزیک میزنه رو ترمز. فقط منم که سرسام گرفتم. دو نفر دیگه خدا رو شکر هیچ اعتراضی ندارن به وضع موجود. سر کوچه پیاده میشم دارم چارنل می طرف خونه کلید میندازم در حیاتو باز میکنم مدیر ساختمون میگه سلام آقا سعید خسته نباشی میگم سلام آقا فرشید نوکرتم زنده باشی آب ها رو با فیشش زدم رو چش چش رو چشم پلها رو دوتا یکی میکنم کلید میندازم میرم تو خونه داد میزنم گلی گلی اخ میدم دراز میکشم رو موکت جلوی در دلم نمیخواد برم تو اتاق اخ این چه دردیه فکر کنم یک ساعت همار اینجا نمیدونم چی نمیذاره با برم تو مهدم هنوز درد میکنه با میشم میرم تو اتاق خواب میرم سر وسایلش دارم کمادشو میگردم ببینم چیزی رو با خودش برده یا نه مثلا لباساشو لباساش همه سر جاشونن وسایلشم همینطور. یعنی چیزی که متوجه نبودنش بشم نیست. بقیه کومالو کشوهاش می می می می می هم می‌گردم. نمیدونم دوباره چی می‌گردم، بی‌خودی می‌گردم همه جا رو. تلفن خونه زنگ می‌خوره. میدونم طرف گوشی. الو، کیه؟ الو، سعید جان سلام، خوبی عزیزم؟ ای داد بیداد. قلبم هری می‌ریزه پایین، مادر گلیه. میگم سلام مامان جان، خوبین؟ آره من خوبم، بابا خوبه؟ میگه مرسی، اونم خوبه. چه خبر مامان؟ ما خوبیم مرسی چرا نفس نفس میزنی؟ از شما چه خبر؟ چرا تلفن خونه رو جواب نمیدید؟ از صبح تا الان صد بار؟ آخه مامان من سرکار بودم گلی هم رفته بود از صبح رفته بود خونه یکی از دوستاش الانم کدوم دوستش؟ موبایلش هم که جواب نمیداد الانم که خاموش آره آخه دیروز دعواتون شده بود قهر کرده بود گوشی رو بده بهش ببینم سعید جان مامان الان حموم گلی گوشیشو خونه جا گذاشته بود حتما انقدر زنگ خورده خاموش شده چرا صدات اینطوریه ناراحتی چیزی شده نه به خود مامان مگه چی شده ببخشید موبایلم داره زنگ میخوره چشم میگم زنگ بزنه بهتون فعلا خداحافظ ببین اگه گوشی رو میذارم این دفعه نر میرم طرف موبایلم الو الو سلام چطوری؟ سلام شما؟ امیرم بابا. وای امیر. چیه چی شده؟ چه خبر شده؟ میگم هیچی آقا. دارم دیوونه میشم. دیگه مغزم کار نمیکنه. دارم خفه میشم فکر کنم. اگر؟ دارم ار ار میکنم، دارم های های گریه میکنم. میگه خیلی خب چرا گریه میکنی؟ ببین تو از چی بیشتر از هر می ترسی؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی میترسی مرده باشه یا مثلا با کسی خب معلومه داد میزنم. این آدم حرف بزن. نمیفهمم منظور چیه. خب ببین سعید خود می میدی زن تو کشته باشن یا دزدیده باشن و هزار تا کار دیگه یا مثلا با کسی رفته باشه یعنی میگم الو سعید ناره میکشم امیر کی به تو میگه زنگ بزنی گوه زیادی بخوری آن؟ کی مجبورت میکنه زنگ بزنی گوه بخوری چپاراست؟ گور تو گم کن سعید من فقط رو قد میکنم آخ گلوم عجب ای دارم من خودم هم تنم داره میلرزه گورتو تو گم کن خب این جمله رو وقتی میگن که تلف رو بروت باشه نه پشت تلفن یعنی نمیشه وقتی طرف پشت تلفونه بهش بگیم گورتو گم کن مگه نه خب شاید بهتر بود میگفتم شر تو کم کن آره خب اینو همیشه هم به کسی که پیشته بگی هم به کسی که با فاصله داره یه پشت تلفنه وای خدایا دارم عقلم و پاک از دست میدم باید یه چیزی بخورم میرم تو آشپزخونه یه سوسیس تخم مرغ درست میکنم با چای فرو میدمش پایین میرم میافتم رو تخت می تمرکم می خوابم. من گلاب تون خوجسته فرزند فروغ ابراهیم نژاد و منصور خجسته تصمیم گرفتم به زندگی خود پایان بدم برای من مردن از هر چیزی بهتر است لطفا اصلا ناراحت من نباشید خدا نگهدار. یک هفته هشتاد و نو. کاش، ای کاش گوسفندی بودم خیالی. یکی از هزاران گوسفندی که می محض خوابیدن برای مردن راههای بسیاری وجود دارد. اگر هنر دارید راهی برای زندگی کردن پیدا کنید و به من نیز بیاموزید اینا چیه؟ یکی بیاد به من بگه آخه اینا چیهن؟ شعرا چیهن؟ اینا رو توی یه دفتر نوشته. حتما خودش نوشته. خط خودشو فکر کنم. این دفتر گالیه. امروز از بستای کشوی کومدش پیدا کردم. تا ندیده بودمش اون نوشته اولش من گلابتون بتونه خواجسته تصمیم گرفتم به زندگی خودم پایان بدهم. اینو توی کاغذ نوشته که پارشم کرده. لای دفترش بود. تاریخشو زده یک هفته 89. یعنی یک سال و 3 پیش. تیکاش رو چیدم کنار هم چسب زدم. اصلا نمیدونستم یه همچین دفتری داره. اینا رو خودش نوشته. واسه چی نوشته؟ یه دفتر برگ پر از نوشتهای اینجوری. چرا یه بار نیورد بده من بخونم؟ چرا نگفت چیز می نویسم؟ چرا من نفهمیدم؟ من خر، من علاق. کاش فقط می توانستید کسی را پیدا کنید که این درد جان کاه مرا کمی تسکینده. کدوم درد جانگا؟ چرا من نفهمیدم؟ چرا به من نگفت؟ من نمیدونم درد زنم چی بوده؟ یعنی مریضی چیزی بوده؟ یا چی آخه؟ داد میکشم لعنتی؟ تو مسیر دانشگاهش میدیدمش هفته سه روز دانشگاهش طرفای فروشگاهی بود که قبلا توش کار میکردم 19 سالش بود منم 21 تنها میرفت میوم میومد از همه چیزش خوشم هم میومد. نگاه کردنش، راه رفتنش. وقتی رفتم طرفش، شرطش واسه قبول دوستیم این بود که دیگه لنز نندازم تو چشمام. از این تیپ های عجیب و غریب هم نزنم. گفته بود لباسهایی رو که میپوشی مال هیپیاس یا یه همچین چیزی. گفته بود تو هیپی هستی؟ گفته بودم نه. گفته بود پس دیگه اینجوری لباس نپوش. دیگه هم لنز ننداز تو چشمات. گفته بودم لنز نیست، رنگ چشوی خودمه بعد گفته بود اه؟ باش، پس برو کارت. خب بچه بودم دیگه از وقتا لنز رنگی میذاشتم تو چشمام دیگه لنز ننداختم دو سال بعد هم با هم ازدواج کردیم الانم دو سال از ازدواجون گذشته. فکر کنم دارم میخندم آره دارم بلند بلن میخندم جرز لای دیوار چیه؟ جرز معمولا میگن به درد جرز لای دیوار هم نمیخوری یا میگن به درد جرز لای دیوار میخوری؟ جرز لای دیوار حتما یه چیز مثل جرم گرفتنه یا چه میدونم مثل آتاشخال لابد که لای درزای دیوار جمع میشه خب به درد نمیخوره دیگه؟ شاید هم میگن جرم لای دیوار چه میدونم؟ من به درد جرز یا جرم لای دیوار هم نمیخورم صبحه یه نیم ساعت خوابیدم فکر کنم. خواب دیدم اون مامور کلانتری که گزارشم می نوشت زنی زنه به میگه زن خودش هم گم شده. بعد میگه زن آقای ساکتی هم گم شده. من نمیدونم آقای ساکتی رو دیگه از کجا میشناخت. از خوابی که دیدم خندم میگیره. نشستم رو سرامیکای آشپزخونه. هیچ غلطی نمیکنم خاک بر سر من که یه سیگار تو هیچ جام پیدا نمیشه. به به چه پسر سالمی. شوهرم لب به سیگار نزده تا حالا. واقعاً خوشبهاله چه شوهر خوبی خب دیگه چی هیچی دیگه لب به سیگار نذره دیگه کلا هیچ گویی نخورده چه شاره احمق بی شعوری انقدر سالم شوهرم که نگو اصلا اهل پارک و سینما و گردش و مسافرت و هیچی نیست خدا رو شکر خب آخه بدبخت مجبور صبح تا شب با یه عده آدمی که اصلا قسط خرید ندارن سر و کله بزنه تا قسط خرید پیدا کنن هیچ جام نمیره نه تنها نه با من ماشالله هزار ماشالله چش نخوری انشالله هیچ غلطی تو زندگیش نکرده دستش در نکنه آره بابا شوهرم یه پارچه آغاز فقط برد روزی شست و شیش بار زنگ بزنه چکم کنه ولی بیچاره نفهمید من چیز می نویسم چیز می خونم این همه کتاب چم کرده تو کمودش من خر نفهمیدم چی می خونه, چی می نویسه چه غلطی می کنه چه غلطهایی ای می خواسته بکنه شادم می گفته من گوش نمی کردم. بیشتر به صداش گوش می کردم من نفهم به حرفاش گوش نمی کردم, قندون خالی کردم رو زمین باشون نوشتم گلابتون. اون عوایل که تازه با هم آشنا شده بودیم چقدر اسمشو مسخره میکردم خب شوخی بود دیگه اونم فقط میخندید اصلا هم ناراحتی چیزی نمیشد شادم میشده دیگه نمیدونم یکی از غندا رو پرت میکنم طرف عکسش که روی یخچال چسبوندم داد میکشم آخه احمق بیشور واسه چی میخواستی یه گوسفند باشه که موقع خواب میشمارنشون میدونی چرا خب اگه اون گوسفند باشه شوهرشم باید گوسفند باشه دیگه یا حتما با خودش گفته شوهرم که گوسفنده منم باید گوسفند باشم دیگه حتما فکر کرده از سرم زیادیه خواست گوسفند باشه تا مثل من بشه که دیگه اذیت نشه <تصفيق> پاک زده به سرم دورو اتاق میچرخم یعنی رفته داد میزنم ولم کردی رفتی واسه چی چون من گوسفند بودم خوب چرا بهم هم نگفتی گوسفند نباش خب میگفتی به هم دارم دورو اتاق راه میرم خود احمقش دانشگاش ول کرد چقدر بهش گفتم پشیمون میشی گفت نه خب لعنتی یه بار میگفتی بریم یه خراب شده یه جایی یه کاری میکردیم یا چه میدونم اسم تو یه کلاسی چیزی می نوشتیم. مثلا کلاس زبان یا همین کلاسای چرتوپرت چرت و پرت شادم خودت میرفتی شاید خیلی غلط های دیگه هم می کردی که من نفهمیدم آره شاید تازه دارم بعضی چیزها رو میفهمم شاید خیلی کارو کردی من نفهمیدم تو غلط کردی تو بیجا کردی خب به من می گفتی. باید به من میگفتی. دارم ارعر میکنم، دارم گریه میکنم. ساعت 11 ده. زنگ میزنم به امیر. الو. امیر سلام چطوری؟ ببین امیر میگه کوچای تو بابا؟ سعی کدوم گوری هستی؟ ساجدی حسابی از دست شکاره. میگم میدونم ببین من کار دارم، حالا من خوب نیست. باید کلانتری هم خب دیشب میگفتی از ساکته كلید میگرفتم یک ساعت پشته درم زنگ زدم زن ساکتی اومده سگ شده بابا سعید چرا ببین میدونم من نوکرتم ببخش مقدیه لطفی کن به ساکتی بگو خانمم بیمارستانه درگیر کارای اونم باشه ببینم حالا خبر تازهای الو امیر صداد ساعت یک و پنج دقیقه است مادر گلی شست و شیش بار به خونه و موبایلم زنگ زده مادر خودمهم شست بار امیر چهل بار حالا اگر امیر سه تا از زنگهای را به مادر گلی بدهد و مادر گلی هم سی تا از زنگهای را به مادر من بدهد حالا حساب کنید گلی چند تا سیب دارد میدونم آخرش همشون پا میشن میان اینجا من صدای عطس کردن گالی رو هم میشناختم خب منظورم اینه که فکر میکردم خوب میشنسمش یعنی اصلا به این موضوع که زنمون میشنسم یا نه یا اصلا باید فکراش روحیش رو فکر نکرده بودم. خب همیشه پیشم بود. همیشه هم به نظر راضی و آروم بود. فقط وقتی که از شوخیامون و دست انداختن مشتری براش تعریف میکردم اخ میکرد و غور میزد سرم. من میمردم واسه این کارش به زور جلو خندهشون می و اخمی می کرد که مثلا کارم اصلا با مزه نبود و خیلی هم بد بوده بعد پقی میزد زیر خنده. من گلاتون خجسته تصمیم گرفتم شوهرمو خاک برسر کنم. شوهرمو دغمر کنم. به خاک سیاه بشونمش از بس خر و شوهرم سعید دانشور عجب شوهر خریست گلی خوجست هم زن خری است. گلابتون خیلی احمقی خانوم میخواستی یک سال و سه ماه پیش خودکشی کنه خودکشی آدم بیخود آدم مسخره جمع کنی مسخر بازیاتو لوس بازیاتو خانوم. کش خود کشته بودی تو حداقل الان من میدونستم مردی صفحه موبایلم داره روشن و خاموش میشه شمارش آشنا نیست. قلبم داره میاد تو دهنم. باشه. شایدم هم... الو، بله. دارم هوار می کشم الو، سلام آقای محترم. روزتون بخیر. عذر میخوام. از شرکت ایمن گستر مزاحمت میشم. فعالیت شرکت ما در رابطه با کپسول های زده حریقه که داخل ماشین نصب میشه. شما یا یکی از افراد خانواده تون اتومبیل دارید؟ ببخشید خانم. الان یکی از اون کپسول های ضد حریق که داخل ماشین نصب میشه اطرافتون یا کنار دستتون هست؟ بله هست ببینید این کپسول ها کپسولو بکنش تو حلقت گوش رو قیت میکنم ای وای خدایا چی گفتم چی گفتم بهش چرا اینطوری گفتم آدم باش بدبخت با مردم چرا اینطوری حرف میزنی؟ به اون چه ربطی داشت؟ چیکار کنم؟ زنگ بزنم و کنم؟ نه بابا چی بگم بهش؟ مگه روم میشه؟ الو؟ سلام سلام نه بابا دارم دیوونه میشم میخوای صدام چه باشه یعنی چی سخت نگیر امیر خیلی حرفیه که چی چی گفتی آره هست آره هیچ چیزش رو نبرده چرا چرند میگی چطوری آروم باشم خود تو بودی میتونستی بابا بابا چی گفتم چی ببینم مثل که تو یه چیزایی میدونی ها بس چرا اینطوری حرف میزنی امیر تو چی میدونی پس چهره اینطوری میگی اصلا شاید پیش خودته آره سلام منم بهش برسون هیفای ای داد ایوان. الو امیر الو بابا غلط کردم ببخشید از ذهنم پرید نفهمیدم چی گفتم الو بابا ما بفهم بدجوری قاطی کردم ببین میدونم میدونم هرچی تو بگی همونه باشه ببخشید خب کر خر میگم ببخشید غلط کردم باشه ببین دوست من برادر من عزیز من دیگه فعلا زنگ نزن خبری شد خودم بهت زنگ می زنم. باشه ممنون. ببین وم و تو رو خدا پاک خاطی کردم چی از دهنم در میاد به همه میگم اصلا دلم میخواست اخلاقم همینه اصلا من بیشورم نفهمم گوسفندم. دلم میخواد آره اگه گوسفند نبودم که یه پیامک اومده بود میگفت. دلم خواست چیست؟ قطعی ترین دلیل برای کاری که در آن ریده اید الو سلام مامان خوبی؟ نه خوب نیستم مامان باشو بیا اینجا خب پاشو بیا بهت میگم خب میگم بیا اینجا بگم دیگه خب نمیتونستم جواب تلفن بدم به اونم نمیتونستم جواب بدم میدونم میدونم خب اونم بیاد مامان گلی نیست رفته نمیدونم کجاست سه روزه مامان پاشو بیام. مثل یه بچه که مامانشو گم کرده دارم گریه میکنم. میرم تو آشپزخونه زیر کتری رو روشن میکنم میرم طرف عکس رو یخچال. کاش زنده باشی. کاش خوشحال باشی. غمگی نباشی. هر کاری کردی به هر دلیلی که رفتی یا هر چی. خوشحال باشی زنده و خوشحال همین